معشوق که عمرش چو غمم باد دراز امروز به نو تلت کرده آغاز بر چشم من انداختم این چشم برفت یعنی که نگویی کن و در آب انداز لب بر لب کوزه بردم از قایت آز تازو طلبم باسته عمر دراز لب بر لب من نهاد و میگفت گفت براز می خور که بدین جهان نمیایی باز در کتم ادم خفته بودم گفتی خیز، دارد به جهان دور جهان شورنگیز، مکنون که به فرمان تو هم حیرانم، القصه چنان دار که کج دار و مریض. ای واقع پسرار زمیره همه کس، در حالت عجد دستگیر همه کس، یارب تو مرا تو بده و عذر پذیر، ای تو بده و عذر پذیر همه کس.